بعد از این همه سال کج و معود شکلی خواند همه گر بینت تنها در خلوت درد پیچیده در خود همچون مار شاید از شرم زیستن سر به هنگام مرگ عزیزیست میگویم که چنین سایه انداختند از نور دستانت بر صورت ناپیدا تا ما بعدا بر چهرت بتابد خورشید های هایت میخواند فرا ابرها را و در آسمان اندیشه میشود تاریک همه جا و باران من میشوم تو جمع شده روی نیمکت رنگوار رفته ای کتابی دست در آن هزاران بار خورشید زمستان و تابستان گداخته در حرارت دردت قبل از آن که را تجربه کنم مذاب می شوم همچون سیمرغ مرغ سرازیر در آب در رهات امثال تو اما قرص و محکم گویا می خنددان شاید بر پیکر سنگی که ترش خورده است از سماجت و خورشید و اسیان باران پوست پوست در اطراف پایه های نیمکت پیر آفتاب ما دوباره برمیگشت آنگاه که پیکر خمیدت ناگهان صاف شد بر ارتعاش صدایی که نام برادر را فریاد میزد قبل از چهار میخ کردن تابوتش در خروجی غصال خانه چه کسی گمان کرد شما هم دیگر را فراموش نکرده اید بعد از این همه سال